تذکری موضوع مهم خیلی مهمه و اون اینه که هیپنوتیزم ذاتن یک علمیه که بی‌قاعده است البته بذارین جای تذکری بدم ما قطعا توی آموزش ها یه سری قاعده خواهیم گفت یه سری مرحله خواهیم گفت برای خیلی از تکنیکوار اعمالشون اما میخوام یادتون باشه که بهترین هیپنوتیزرها بهترین کسایی که توی هیپنوتیزم استادن و ماهرن و به خوبی میتونن هر جایی اونها رو اعمال کنن کسایی هستن که لزومن تو ذهنشون دنبال مرحله یک دو سه نیستن یعنی وقتی میخوان رو کسی اثر هیپنوتیزمی بذارن یا رو خودشون اثر این اثر رو بذارن نمیان بگن خب مرحله اولی نست است که ما این کارو کنیم دوم این است که ما این کارو کنیم حالا سه بیایم فلان کارو کنیم نه چون که بهترین هیبنوتیزور ها اتفاقا به شدت توی لحظه حضور دارن و بعدش با توجه به اینکه کلی جعب ابزار ارتباطاتی و هیبنوتیزمی دارن جعب ابزار ارتباطی و هیبنوتیزمی دارن اسلام میکنم با دقت و با حضور و کامل توی لحظه میان متوجه میشن که خب الان با توجه به شرایط فعلی موجود من حس میکنم که باید فلان ابزارها و تکنیکهایی که بلدم رو اجرا کنم و حس می کنم این بهتر جواب میده. و بعد میان اونها رو استفاده می و هر لحظه دارن فیدبک رو می بینن که خب الان کیس داره هیبنوتیز میشه یا نمیشه شه دارم به اون هدف که داشتم نزدیک میشم یا نمیشم اگر نمیشم فلان ابزار دیگر رو استفاده می کنم اگه اون هم جواب نمیده ده دوباره برمی گردم به فلان ابزار میدونید یه مجموعه از ابزارهایی رو شما باید یاد بگیرید اگه میخوایید یه هیبنوتیزور عالی بشید و بعد خلاقانه با حضور کامل توی لحظه ببینید کجا، کدوم، تکنیک بهتر جواب میده و این قطعا چیزیه که میپذیرم یه مقدار تجربه میخواد یه مقدار تمرین میخواد که من خواهم گفتا چه تمرین هایی رو انجام بدید اما میخوام آگاه باشید که برای ابنوتیز بکنم خودتون یا دیگران هشن من روش های رو به شما میگم اما در کل خیلی دنبال ساختار منظم نباشید چون که بهترین ابنوتیزور ها بهترین اساسی کسایی هستن که اصلا ساختاری رو نمیپذیرن و کاملا توی لحظه حضور دارم بسته به شرایطی که ایجاد میشه رفتارهای متناظر رو نشون میدن دقیقاً همینه که باعث میشه به هیپنوتیزم بگیم یک هنر چون واقعاً هنره باید هنرمندانه اعمال شه این که شما یه سری علم داشته باشید لزوماً کافی نیست شما باید هنرمند باشید تا پس از یاد گرفتن یک سری ابزارها و اینها بتونید هنرمندانه از اون ابزارها استفاده کنید و به خوبی اون نتیجه که می خواهید رو خلق کنید و خودتون به وجود بیارید همچنین مهم هست که شما کم کم مهارت و تسلطتون روی ابزارهایی مثل حرف زدن مثل استفاده از کلمات مثل زبان بدن مثل ایجاد احساسات مختلف توی خودتون یا دیگران اینها رو کم کم تمرین کنید همه تمرین متناظرش رو بهتون خواهم گفت نگران نباشید بنابراین این نکته رو از این درس باید مدنظر قرار بدید